راجعه کیفیت نماز شب یکی دوبار سال پرتیده بر کیفیت نماز شب رو مرحوم و شب و در مفاتیح داره راجعه مراجعه کنید اگر نیسان از کم شروع کنه بخواد به زیاد برسه نمیرسه همونجور که اونجا گفته شده به همون مقدار ذکرا گفته بشه و خونده بشه انشالله آ، یعنی از کم شروع نکنن نه. کامل انجام بشن بله اون مقدار که اونجا گفته خوبه از اون کامل تر هم همون مقدار خوبه